الا بستان 28 مه 2008 الا امروز صبح بیالتر از همیشه بیدار شد حالا حوصله نداشت نه اینکه غمگین باشد بیشتر به این میمانست که انگار به آستانه ای نزدیک شده که اصلا دلش نمیخواسته به آن برسد. چیزهایی در زندگیش تغییر میکرد. این را حس می کرد و انتظار میکشید توی آشپزخانه همانطور که داشت قهوه درست میکرد یک فهرست تصمیمها پیدا کرد که پیشترها نوشته بود و بعد توی یکی از کشوهای کابینت گذاشته بودش نوشتههایش را کنجکاوانه خواند کنار تصمیمهایی که عملی کرده بودشان با قلم قرمز علامت زد. ده کاری که پیش از چهل سالگی حتما باید انجام بدهم بعد از این منظمتر باش از وقتت بهتر استفاده کن برای خودت یک سر رسید نو بخر انجام شد رژیم بگیر روغن و شکر و نمک را فراموش کن. مکمل معدنی و آنتی اکسیدان بخور. انجام شد. با چین و چروک ها مبارزه کن. از محصولات آلفا هیدروکسیل استفاده کن. کرم جدید اورال را فراموش نکن. انجام شد. روکش موبل ها را عوض کن. برای اتاق پذیرایی گیاهان زینتی جدید بخر. بالش ها را عوض کن. انجام شد. زندگیت را بررسی کن. ای همچی می شود گفت انجام شده. دیگر گوشت نخور. هر هفته یک منوی بهداشتی آماده بکن. به بدنت خوب برس. می‌شود گفت انجام شده. کتاب‌های مولوی را بخر. هر روز دست کم دو قطعه شعرش را بخوان. انجام شد. بچه ها را به یکی از نمایش‌های موزیکال برادوی ببر. انجام شد. نوشتن یک کتاب آشپزی را شروع کن. انجام شد. دلت را به روی عشق باز کن الا مدتی بیان که تکان بخورد همانطور ایستاد نگاهش به آخرین ماده فهرست دوخته شده بود موقع نوشتن این جمله چه فکری توی سرش بوده؟ در ذهنش چه میگذشته؟ با خود گفت حتما تأثیر ملت عشق است. از وقتی رمان عزیز ظاهرارا را خاند، زیاد به عشق فکر میکرد. عزیز گرامی، امروز روز تولدم است. حس می کنم به یک نقطه عطف رسیدم. به چهل سالگی که می میفهمی پیر شده ای. با همه سنگینیش. این مسئله به خصوص در مورد ما زنها صدق می کنند. البته مجله های زنان در آمریکا با اصرار میگویند گویند عمر انسان خیلی طولانی تر شده و چهل سالگی الان مثل سی سالگی قبل است و شست سالگی الان مثل چهل سالگی قبل است. چه کسی را میخواهند گول بزنند؟ چهل سالگی؟ خب چهل سالگیست دیگر. الان در هر زمینه چیزهای بیشتری دارم. دانش بیشتر، کمال بیشتر، عقل سلیم بیشتر. و در صورتم چین و چروک بیشتر. در گیسوانم موی سفید بیشتر. حساسیت بیشتر، خستگی بیشتر. روزهای تولد معمولاً باعث خوشحالیم میشد، اما نمیدانم چرا امروز صبح از خواب که بیدار شدم، در سینه ام سنگینی حس میکردم. کردم. لحظه ای فکر کردم زندگیم هم همین طوری میگذرد و تمام می شود. و این فکر لرزه بر اندامم انداخت آیا واقعاً میخواهم زندگیم عوض شود؟ یک دفعه فهمیدم اگر در جواب این سوال بله بگویم یک جور می شود اگر نه بگویم یک جور دیگر. هر دو جواب هم میترساند مرا. با این امید که از من سرحال تر باشی، دوستت الا. بعد تحریر فکر کنم نامه کمی غمگین شد. ببخشید این روزها خیلی با خودم سر و کله شاید تأثیر رمانت باشد، یا اینکه رسما وارد بحران میانسالی شده. الای عزیز، تولدت مبارک، چهل سالگی هم برای مردها، هم برای زنها بهترین سن است. به نظرم عدد چهل سهرامیز است. بیهوده نیست. طوفان نوح چهل روز طول کشید. آب همه جا را گرفت اما این ویرانی سراسری در این حال همه چرک و کسافات جمع شده را نیز پاک کرد و به زندگی فرصت شروع دوباره داد. در تصوف اسلامی عدد چهل نشان دهنده زمانی است که برای گذر از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر صرف می‌شود و نماد بیداری معنوی است معرفت چهار مرحله اساسی دارد در هر مرحله ده درجه موجود است که در مجموع می‌شود چهل. حضرت عیسی چهل شبان روز در صحرا چله نشست حضرت محمد در چهل سالگی مبعوض شد بودا زیر درخت زیرفون چهل روز غرق تفکر شد و البته که چهل قاعده تلاعی شمس را هم نباید فراموش کرد انسان در چهل سالگی مسئولیتی جدید بر عهده میگیرد به نظرم وارد سن با شکوهی شده ای اصلا هم لازم نیست نگران پیر شدن بشوی چهل رقمی چنان قدرتمند است که چین و چروک و موهای سفید در مقابلش هیچند با امید اینکه مراقب خودت باشی عزیز